بسم الله الرحمن الرحيم الوقف بحث واقفة القسم الثاني قسمة دو همش. الوقف بهاء السكت دارين درس واقف بها السكت توزيه مده الامثلة لا تخلف وفه اعمل ولا تنه بالصالحين اقتده یا اقتد قامت السماء ولم تصف یا لم تصف این مثلله گروه اول بود فعل محزوف آخر بود های سکت شد توضیح میده در قواعد میاره. امسله گروه دوم های استفهامیه هست زمان که الفش هست میشه های سکت روش میاد خب این وجوبی و غیر وجوبیش تو قاعده توضیح میده دو حالت داره غاب وب و لا به بمقتضا مه الا ما التوانی مه یا الهام میتونیم ما الاستفهامیل رو در این حالت با حائ سکت بخونیم بگیم الیلام اتتوان الی مه و میتونیم بگیم الیام بدون حائ سکتش بخونیم اما در حالت اولی غب با ولا ادری بمقتضى مه واجب بود حالا در قواعد توضیحش میدیم رضیت بنصیبیه می بگیم می تونیم بگیم رضیت بنصیبی حروف دیگه یا زمیر رو بدون های سکت بخونی نصیبیه با های سکت روش توقف کنی یا بین نصیبی بدون های ساکت جئتو ولا تسل كیفه یا کیف من المواد الناتی یوقف فيها بهای ساکت ما یأتی از جایگاهایی که وقف میشه. در آنها با های سکت مواردی هستم کی میآیند سجا هستند هر سجار رو توضیح می‌ده الف الفعل المحذوف الاخری جای اولی که با های سکت روش توقف میشه چیه الفعل المحذوف الاخری فعل محظوف الاخر خود چرا فعل محذوف الاخر میشه اللي المضارع یا مضارع هست به خاطر مجزوم بودنش او بنای امر یا بخاطر بنای امر یعنی امر بخاطر این که مبنی بر حصف حرف آخر هست و این زمانی هست که فعل معتل آخر الاخر باید باشه تا آخرش به خاطر مجزون بودن مزاری یا به خاطر بنای امر آخرش حصف بشه پس این در فعلهای معتل پیش میاد پس اول جایی که با های سکت توقف میشه الفعل المحذوف آخری فلی که آخرش حذف هست چرا آخرش حذف است؟ لجاسم المضارع یا اینکه مضارع هست و مجزومه آخرش حذف شده؟ آبینای الامر یا امر دیگه به خاطر امر بودن چون امر ما بر حذف حرف الا هست اگر موتال و آخر باشه. و والو... وقت با های سکت در این حالت یا واجب است یا جایز ولی دقت داشته باشید چه جاهایی واجبه که با های ساکت توقف کنیم و چه جاهای جایزه که با های ساکت توقف کنیم یا بدون ها والوقف بهای سکت هنا واجب ان بقي من الفعل بعد الحذف حرف واحد اصلي وقف بهای سکت در فعل محذوف الاخر واجب هست ان باقیه من الفعل بعد الحذف حرف واحد اصلی بعد از حف اگر یک حرف اصلی باقی مونده بود واجب که در وقف ما های ساکت بیاریم و با حسک توقف کنیم این در معمولا در لفیف مفروق پیش میاد چون هم مثال هم ناقص واغش به خاطر مثال بودنش حصف میشه و موتلو الاخرش هم به خاطرین که یا مزاره مجزون باشه یا امر در این حالت دیگه آخرش حصف میشه پس حرف وسط فقط باقی میمونه مانند لا تخلف و فه اینجا فه در عصف فی هست فیلش چه هست؟ وفا یفی وفا در مزاره که بیاریمش واو هست میشه چون قائده رو خوندیم در مثال دیه که بروزن باشه مثال واوی واو در مزاره هست میشه وفا این یا علامت مزاره حرف اصلی نیست موند فا یا کنیم چه مزاره چه امر فقط فا باقی میمونه روش که توقف کردیم بعد ها را بیاریم لا تخلف وفه وعد خلاف نكون فه وفا كن وفا يفه بس انجا باعد موقع توقف نکنين باعد بديم فه فه خالي نباد بديم چرا چون فقط فا باقي من ده هست از حروف في اصلية فهل واغو يا حس شده عند واغو بخاطر مثال بودنش يا هم بخاطرين كي اين امره و امر ما بنی بر حس فهر فه الله در موتلو الاخر یا در مثال دومی دو اعمل ولا تنه این ونا یعنی هست اصلش یعنی خسته شدن سوست شدن این هم امر مزاره مجزوم هست ونی این لا لای نحی هست تا که علامت مزاره هست ونا یعنی و بخاطر مثال بودنش هست شده بخاطر قواعد مثالش یا هم بخاطر این که مجزومه دیگه تنه تنه یا حسف است تا که علامت مزاره حرف اصلی نیست از حروف اصلی فقط نون باقی مونده چون فقط یک حرف اصلی باقی مانده وقتی که روش توقف میکنیم باید با های سکت توقف کنیم بگیم اعمل ولا تنه با های سکت روش توقف کنیم یه های ما میاریم که اونها رو میم های سکت کار کن و سست مشه اعمل ولا تنه پس تا انجای قاعده علف گفتیم فعل محوف آخر. حالا چه با خاطر اینکه مزارع مجزو باشیا به خاطر امر وقت با های سکت واجب اگر فقط یک حرف باقی بمونه. ما دو سال که خواندیم، فان باقی حرفانی اصلیان اگر دو حرف اصلی باقی بمانه بعد از اینکه لاملفیلو حذف کردیم. او اکثر یا بیشتر یا حروف اصلی بیشتری باقی میمانه جایز الوقف به های سکت و جایز تسکین. جایزه که با های سکت روش توقف کنید و جایزه که های سکت نیاریم و با سکون سرش وقف مانند به صالحین ایق تده در ایق تده قاف و دال حرف اصلی هستند. همزه اضافی تا هم اضافیه باب افتعاله. اینجا ما میتونیم های سکتو بیاریم وجایزه که های سکت نیاریم با سکول توقف کنیم جایزه که بگیم به صالحین اعتده های سکت بیاریم جایزه بگیم به صالحین اعتد چرا چون دو تا از حروف اصلی باقی مانده فل امره لام الف حذف و الف و و اینو الف که قافو دال باشن باقی مونده يا مثال بعدي غامق السماء ولم تس فه صاد فاق دوتة حرف أصليها سنبقي من ده إن جه ميتونيم باهاي ساكت واقفوني وميتونيم باسكون ميتونيم بقول لم تس فه ومتونيم بقول لم تس ف ويستحسن الأول أولي بهترست و به هداه مقتدی در قرآن هم وارد شده و های سکت آمده است و وي یستحسن الاول و توقف کردن با های سکت بهتر است است یستحسن استحسان هست بهتر است این قاعده 240 من کتاب قسمت الف بود فعل محذوف الاخر تهذی میداد توقف باهای سکت اما قاعده همین قاعده کسره باب ما الاستفهاميه ما الاستفهاميه اذا حذفت الفها للجر زمانی که الفش بخاطر مجرور بودن حذف بشه علف در حالت مجرور بودن حذف میشه نه رفع نصب ويكون اجتلاب الهائي الوقف واجبا إذا إن كانت ما مجرورة بالمضاف اجتلابها آوردنها يساقت براي وخف واجب هست زماني كما مجرور بشه بخاطر مضاف بودن معنى ده غضبه ولا أدري بمقتضاء مح مقتضاء إنجا مضاف هست مه اینجا مضافون اله هست میگه زمانی که مای استفهامیه مجرور بشه عرفش حصف بشه ولی بدلیل مضاف بودن مجرور بشه نه با حرف جر چون کلمات یا با مضاف مجرور میشن یا با حرف جر یا تابع مجرور بشه میگه زمانی که با مضافی مجرور بشه یعنی مضاف اله واقع بشه اینجا واجب است که های رو بیاریم زمانی که روش توقف کنیم با ولا عدری به مقتضاب مح زمانی که روش توقف کنیم بعض های رو بیاریم چه زمان؟ زمانی که مجروب شه مضافونیله واقع بشه پس و و استلاب الهایل الوقفی واجب آوردن های سکت واجبه انکانت ما زمانی که ما باشه مجرور تن بالمضاف مجرور به وسیله مضاف اما مجروره به حرفی اما زمانی که با حرف با حرف مجرور بشه با حرف جر فیجوز الوقف علیها به های سکت است که وقف بشه روش با های سکت او تسکین یا با سکون مانند الا ما اتوانی الا مه الا مه بینید اینجا ما ای استفهامیه مجرور هست ولی به وسیله اله به وسیله حرف جر مضافن اله نیست بلکه با حرف جر مجروره لذا اینجا توقف کردن با های سکت جوازی هست ما میتونیم بگیم اله مه با های سکت میتونیم بگیم اله مه با سکون رو شواخف کنیم و المختارو الاول ولی و مختار همین است که با های سکت روش قف کنیم. اول یعنی با های سکت، نبا تسکی. این بود مای ما استفامی چون های سکت شجا میاد، فعل محظوف الاخر بخاطر مجزوم بودن، حالچه مزاره مجزوم باشه چه امر، مای ما استفامی اما سو جایی که های سکت میاد، جیم کلو متحرکن به حرکت بنا الا الفعل الماضی هر متحرکی که با حرکت بنا اصلی هست ما یه مبنی بودنی داریم ولی اصلی نیست مثل یا زیدو زید اینجا مبنی بر علامه طرف هست مبنی بر زمه هست ولی و خاطرین که مناده معرفه هست وگرنه زید مبنی نیست در اون حالت مبنیه مبنیه های اصلی رو میگه میگه کل متحرکن بحرکتی بنا اصلی اصلیه هر متحرکی که با حرکت بنای اصلی متحرکه البته جز فعله ماضی چون فعل ماضی هم مثلا زربه مبنیه قبیل بر است ولی فایف اعلامیه از این قائد مستثنی است. پس هر متحرکی با حرکت بنای اصلی یکی از جاهایی است که های سکت میاد و هنر ولی در این قاید این کل متحرک الوقف جزء هست وقف به های سکت با های سکت یا تسکین یا وقف با تسکین با سکون مانند رضیتو به خب یا متحرکه با حرکت بنای اصلی تو زمینه دیگه ما میتونیم روش توقف کنیم با های سکت میتونیم باسو میتونیم بگیم به میتونیم بگیم به نصیبی باسو کن جئتو ولا تسل کیفه کیفه دیگه از عدات مبنی بر حرکت اصلی مبنی بر فتحه است کیف؟ چون همیشه مبنی بر هست است موقع کروش تا قف کردن می تونیم بگیم جئت و تسل کیفا با های سکت روش تا کنیم و می با تسکین بگیم جئت و تسل کیف جئت و تسل کیف پس این بود وقف با های سکت که در سه مورد می که این سه مورد رو مفصل ذکر کردیم موافق و پیروز باشید